من الشيخ والرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صل الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والله الدائمة على هزائهم أجمعين اللهم أفرنا جميع المشتبين ورحمنا برحمتك يا رحمة الراحمين ارشان به مناسبت این که از دوستان متعرضه هر شدن ما همین بحث رو از کلی متعرض بشیم برای روز بس چون قرآن مستر تشکیل در اسلام هر به بعض از آیات مبارکه قرآن هم تمثب شده که امدهش دو تا آیات از از از از یکیش هم دو تا شده که مجموعه از تا آیاتشون یکیش تکتاره سبیدن که مزمون نه به این الفاس و اون آیهی که مطلقه در آیه مبارکه فلایه و غیران الله که تغییر خلق الله به جمعی مراتبش حرامه که بیشم حلقه لحیه باشه از شون استادم در اینجا عبارت طبیان رو چون انصافاً عبارت طبیان نصفت به دنیای شیعه قدید تنین عبارت تفسیری مرتب و منسجم ماست از نصفت این تفاثیری دیگه نزا حالا این خونده میشه چون بعض نقارم هست برشون گه و قال قومون هول وحشی این وحشم خالکوبی رو به اداره کنه حسن و زحاک و ابراهیم ایزه و عبدالله عبدالله هم عبدالله هست مسعود قال عبدالله لعن الله و آشماد و الموتشماد و المتفلجات و المغیرات الله البته با این متن هم شده با اون متن چهارتایی هم نرو شده چون ما در بحث وصل شهر اونجا بحث کردیم که یک محن چهارتایی هم داره که یکیش وشم خارکوبیه یکیش وصل همین کلاهیت ها و موبه مورد یکیش در اینجا متفلجات و یه تعبیری هم داره نگاه میکنم بله ها واشر که دندان ها رو تیز میکردن برای شنکلی بله که مسخره مسخلجات داره یکی وشمه یکی به به شعر یکی دندان تیز کردن یکی دیگه هم هست الوازه رو موسیلون اونجایی بلا یکی جدیش همست کنم یادم نه واصلات واسلات لعن الله الواسلات و مستوسله لعن الله الواسله ول مستوسله در همون بحثم اعرض کردیم به لحاظ لغوی اون کلمه مستوسله هم دو جور کنده شده مستوسله به سیقه فائل و مستوسله به سیقه مفعول و سر اختلافش هم در که مراد از واسله کیه لعن الله الواسله و اصلا یک خانمی میاد موی این زن رو به موی چیز دیگری رو میزن یک وست میکنه یا از رست مونده بنشون به موی بزیر چیزی مثلا سوفی قرار داده واسه رو یه خانمی انجام داره یه خانمی دیگری این بحث کردن که واسله کدومی کشونه اونی که موش رو چسبونده یا اونی که این عمل انجام این رو انجام داده موی یک زنی رو چسبونده به یک چیز دیگری یادن خود اون خانمی که موش این اگر این باشه این خانمی که انجام دادی اون خانمی که این یعنی اون خانومی که این انجام گرفت اون خانم انجام دهنده رو باید مستوصله وسیله مفعول اما اگر بواسطه اون خانم بشه که موار میشدونه این زنی که رو بدنش انجام شده این وابسته شده مستوصله یعنی طلب رفع می‌کرده وسیله فاعل مستوصله یعنی این طلب رفعی کرده این زنی که این کار این واشرو معاشمه و منتشمه همه این طور الى آخری و قال عبدالله لعنه الله الواشمه و منتشمه و المتفلجات المغیرات خلق الله از شد سابقا در همین روایت روایت رواسل و اینها توضیحات مرفسلی که اصولا این روایت از پیغمبر نه شده به لغات مختلف نه روشده به تعالی مختلف نه روشده در سهی بخاری هم هست یه احتمالی رایجی که خب دوی از افرسانات قالب و حرمت شدن ما هم قالب و حرمت نشدیم هلا بستشون الا در جایی که مسئله گشت مطرح باشه یعنی تدلیف یه احتمالم بنده دادم که این آونی کمتر دادن که این اصولا شده نبوده اون مورد روایت الاتر بیده سهر که درستا بخاریم آمده مورد زن جوانی بوده که هر کاره هنوز زفاف نبوده ناگهانی معاش میشه و اون شوهرش هم احساس داشته به زفاف میرن دران زنی که کچر شده متحیر نه یه موی روی سرش مادرش از پیغمبر پرسید ته نه، نعما سمده ان الله لعن الواصل و الموسلمه این اگر این باشه اگر حدیث واقعا این باشه میان در روایات ما اصلا مشکلش نشینی که اونجا خیلی توضیح داده نشده اگر حدیث این باشه احتمال سومی هست اون اینکی از این زنه که مریض بشه دختر به یک مرض پوستی منطقه بشه که بحث تگیج و رجالانه بود بحث پشتایی ها شاید با این کلاهگیس رو هست مرض او رو به خوشون سر به این که بر این مورد رو هم به شدت نه کردن چون بحث زینت نیست بحث این نیست که زن با این میشه. حتی صحت و مرض زندگی مثلا عمر مثلا زندگی که بعد داره. این احتمال که یک دختر جمعانی ناظرانی تمام مواش بریده و کشم بشه این احتمال قویه که این مختلف مرضی شده و این که در روایات ما این وصل شر جالیست شده صرفش این اصلا احتمالا که این کار فیلمسه حرام دید فی توضیحاتش گذشت. اون وقت پس بنابراین ازدهی اسباب این که این مثلا غرش از باب اینه که این تبلیغ از باب اینه که مثلا این تذیل مرعض از اون که این مواجهه شان بکنه راه بره مثلا تبیج رجال ایده از اینه من چه ذهنم چی دیگری هست نه، این را اول نروشته بودم من چه ذهنم چیز دیگری چون ربطش به مساله دیگری نداره لكن از عبد الله بن مسعود نقل شده این اصطلاح اهل سنت بهش میگن موقوف این موقوف در خود عبد الله مسعوده این کلام عبد این کار اساسی و هنر اساسی اون فهم خبر به ما و خبر رو کنند رو از امام بشه بره ما این کلام عبدالله ابن مسعوده و معلوم میشه از این عبارت که عبدالله ابن مسعود اون وصل و وشمون و وش رو وش این دمجان کردن وشمون این حالاتی که هست اینها رو برده رو انوان تغییر خلب الله چند تو چند تا اون ما حتی یک همونی که بین اهل سنت مشهوره که این عناوین به نفسه حرامه. یعنی عنوان مخاطه نشه. اصلا چسبوندن مو به موی دیگه حرام است. خالکوبی حرام است. این یه رأی شایع به سنت. که به اصطلاح دیگران مثلا اینا خیلی ظاهری نه مثلا. رأی شایع که اینو عنوان به نفسه حرامه. و بجنش شد. رعی های دیگه هم محرم شد. ببینید که نه این از باب تجرید حرامه. یا اگر این مثلا جندره چیزی فیس بکنه موجب تنجش به جان میگه از این جرها این ستاره یه رأی هم بنده دادم که احتمالاً مراد مرد بوده اصلا اون نقصشون که مرد بود این شاد تنگی میشن عبداللهم مشعود من انشاکر در معارف دینی سعی کرده اون زمان صحابه سرونه صحابه در بیارید یک تفاوض زمان خودشو عبداللهم مشعود برنده شو عنوان محیرات الحمدلا این که خالکوبی میکنه یا تیز میکنه و اونی خفتشون دندناشتی اینجوری باشی اون دندناشت تطرف میکنه توی موش کم بوده و موش زیاد میکنه این کلام حدیث موقوف نظر خود عبدالله ابن مسعوده خلاصه نظر عبدالله ابن مسعود این چار عنوان که حرامه در رسال رسول الله و او اونوان طبیر خلق الله حرامه پس اینها به عنوان حرام مخواد طبیس باشه یا نباشه نقطه شم به عنوان تغییر خرب الله و شما ممکن است بگید خب عبدالله مسعود جلو که جای اسمت که نداره از کجا عبدالله مسعود میگه لعن الله لعن رو به خدا نسبت میدهه این لعن الله باید مصند به وحی باشه چطور عبدالله مسعود خودش میگه لعن الله این هم به خاطر این نکته. است چون در زواهر آیات مبارده اصناد لعن به خدا شده اولا اگر لعن همون لعن همون یعنی لعن غیر از سبه تالا شاید در خلاف بحث و اندان اشاره بشو کن دو اینکه که عبدالله مسعود این را هم از آیه فهمیده یعنی ایشون میگه وقتی که در قرآن کریم تغییر خلق الله عمل شیطان شو کن عمل شیطان را برای نه. وقتی عمل شیطان شد عمل شیطان ملعون خداست ممخوض خداست شیطان لعیم به قول مروض این عمل عمل شیطانی از نظر خدا ملعونه مطروده دفت میکنیم پس این سر این که ایشون میگه لحم الله و آشماد و این متفلژات یعنی خود فرج و شکاف متفلژات ایجاد شکاف بین دندان ها این رو به اصطلاح در قواهد دیگرشون وشر با را آمده واشرات و الموتشرات وشر و تفلل و فلش این دندانه ها تیز کردن و بین اونها فاصله انداختن المغیرات خلق الله این هم این وقال از زجاد خلق الله تعالی الانعام لی اکلوها فهرموها علا انفسه این اشاره با آیه مبارکه فلیوبت خون ناظان الانام که دیروز عرض کرده. گوش اون حیوانات رو می یا شخاف می این هرموها اشاره کن و خلق شمس بلقمر بلحجاره مسخرتم لناس این یوهی رو نخلق الله رو گرفته اینها معبود خدا هستند، اینا آمدن اون رو آب... معبود خودشون قرار دادن با اینکه اینها ها مخلوق خدا هستند یعنی اون به ها تعبد هم مشرکون چرا این زجاج هم تعبیر مشرکون کرده از کردم این نکته فنی داره. چون توی این آیه قبلش هست لطفیرن نمه نه هم نصیبا مفروضا یکی از خرای شیطان شیطان در هر کاری یک نصیبی داره این اشاره است ببینیم که فری و غیران الله یعنی شیطان آمد در این کار دخالت کرد مثلا این نازل. تا پنج شکم نزاودی بعد از 5 شکم دیگه نمی‌خوردن کردن اون 5 شکم که می‌خوردن خلق الهی اون 5 شکم که بازش می‌خوردن این مفعول مسیب یا مفعول شیطانه این هجاره و شموس و بودنش این الهی است این که معبود مشت... مشت... مشت... باشه این معمد. چرا مشرق یعنی به شیطان رو قبول کرد برای غیر خدا هم نصیب قرار داد دقیق فرموندید این تفسیری که از در جایز هست ایشون میگه به اقوال اقوال مرمون شیخ توسید دنبال عباد سلی و منحال فلیو خلق الله به معنا دین الله این رو به معنای دین گرفتن این از که از سابقه داره از اهده صحابه هم نهارو شده یه یک نکتش تفسیر قرآن به قرآن به اصطلاح به زلال از قولیه تعالی خفرتن لا, هل لا هلکی فتران ناسه علیه ها لا تبدیل لفرق الله چون در اینجا خلق الله زالک الدین القیه چون به عنوان دین آمده پس خلق الله در اینجا همینچون عرض کردن این یک راهی در این بحث هاستن بحث سابق اصولا یک راهی بوده که اصطلاحا در طمع دوم یواشاش که این بحث تکامل پیدا کرد از زمان صاحب شروع شد گاهی ازش تعبیر به اشباح و کردن کردند مثل. مثلا گفتن این آیه مبارکه در اینجا به این معنیه چون در اون آیریه نمی‌تونه خب شما الان خیلی راحت اینا رد میکنین اشکال میکنید لاکین این در اون زمان یه فرهنگ بود خب خالق الله قرون ما ظاهر هراب لدین این ظاهری که خالق الله خلقت دیم نیست کتاب خب از دین الله دیمزی این یک اصطلاحی بوده این در این کتاب الاشباه و نظاره مقاطب سلیمان خراشانی برخی اگر نگاه بفرمایید مثلا این آیه در اینجا این به ب... اون همید. اون این یک نحله فرهنگ تفسیر قرآن بوده یک فرهنگی بوده که اگر در یک جایی یک معنی آمد کافیه خب شما ممکن است این درجه دیگه و معنی الان بردم عرض می کنم این دیگه از این خلال این تفسیر ها تو مثلا گفته طبیب طبق الله این خصا از که دن لغویه میاند صحیحش خصاست خصا عبده اخصا نیست لیکن در روایات در روایات ما و روایات سنیه ها و در عبارات خواه ما و سنیه ها قدیمند و حدیثت اختصار استفاده می‌کنه میگن غلط عذبی. صحیحش خساره اینجا هم اومده اختصار اینجا هم داره خودش و در کتب اهل سنت هم هست تو لغارت می‌کنه از تو ذات ما هم هست کلمه اختصار انصافا جوریه البازی است که به کار برده شده در کل این مسأله این از صحیحش خساره نه اختصار اگر دقت بکنید مثلا اختصا یا اگر دقت بکنید به اینکه مثلا فرض کنیم نقش یا اگر درست به معنای اون چارتاییی یا ستایی که عبدالله مسعود گفت تمام اینها ظاهر خلقتیه، هم نیستشون. نیست توشون که هم دروران هم میشه در بکر در این آیه مبارکه که یک جهت ظاهر خلقتی باشه تغییر خبر مثلا خالکوبی میکنه بدنش موی دیگری به موی خودش رو میکنه مثلا زندوناش تیز میکنه مثلا ریشی میمیتراشه این مجموعه ظاهری. یکی اینکه بگیم خلق الله یعنی دین الله مجموعه ظاهر و باطن من چند تا شوط در بحثهای قبل ما اصلاً میگم در لغت عرب ظاهر رو خلق میگن باطن رو خلق یا خلق میگن در خود قرآن هم به این معنی انکه لا اله خلق نامه این اصطلاحی که جمع خلق رو هم اخلاق به معنی امور باطنی میگیرن صفات باطنی رو اصطلاحاً اخلاق میگن ما در اینجا آمدن گفتن که خلق الله یعنی دین الله به قرینه تطرت الله اللہ سی فتر در کتاب تفسیر قومی که در اینجا هست ولی یه سطحه بالا نگاه کنن نوشته ای امرالله در یه غیر مخلق الله ای امرالله نمشه دین الله پس تا اینجا دو تفسیر اساسی مرمون شیخ می ویت رایت خلو فیداره ما آقا مفسرون چون تمام اینا جوز دینه. لنه ازاکان الاله که خلافت دین فل آیه تتناوله بود اینا تمام جزو دین میشه البته اینجا این بحث پیش میاد مثل مرموم شیخ توسی قدس الله محصر البته بعدها مثل مرموم اصلا هم تصویر قبول کردن دین غیب به معنای دین گرفتن لیکن این بحث پیش میاد که اگر آیه رو به معنای یک عمل برسه معیم گرفتیم ظاهرش اینه که اون عمل معین حرامه اما اگر دین گرفتین باید ثابت بشه اون کار روزه دینه اونو نمیتونه دیگه به حرام میکن اینه از مفسرین من یواش باید که باید باید تفسیر آید بشید این ظرافت نصف اگر شد اگر تلیوغیون خلق الله به معنای دین الله باشه دقت بکنیم باید ثابت بشه که اون چیزی که الان مخواهی تحریم بکنیم الله دیمالله اما اگر یا این طور نیست که عبدالله مسئول به نظام حواسش پر بود یک چیزی برای خودش گفته اگر نکته فمنی روشن شده اگر یک چیزی رو به عنوانه حرام گرفتیم مخصوصاً اگر رو ومعنی ظاهر گرفتیم قلقت گرفتیم همه ظاهری در مقابل دین که یک شامل آلا معنوی و ظاهی شامل یعنی معنوی اختصاص معنوی داری اگر مثلا گفتیم مراله همین اخته کردن مثلا گوستند و اخته کردن مرگ خروز اگر این گرفتیم ظاهرش یا به قول عبدالله مسعود فرس یا شعر و نمیدونه خالکوبی و اینا رو گرفتیم خود این اعمال حرام میشه. اما اگر این پدیوه قیران دین الله گرفتیم دیگه حرام. هن. حالا نمی‌شه بگیم خالکوبی حرامه باید اول اسناس نکنیم که خالکوبی در دین حرامه تا ب... آها روشن پس این جریان یک حساب شده است که آیا ما از این آیه مبارکه به شیخ طوسی و ائمه دیگه هم گفتن تمام این عناوین داخل میشن لیکن به نظر من اون زرافت نکسه را را توجه نشده روش اون فقاحت نکسه اگر ما گفتیم مراد اندر است، این خودش حکم میشه خود این حکم میشه یعنی تغییر خلقت ظاهری جایی نیست حالا اون شلق الله رو چی معنا بکنیم اون بحث دیگر ممکن است یک معناه آم میده درد ظاهر بگیریم که مثلا فرسونیم مثل تراشیدن مو و ریشتراشی و مثلا فر دنگون کیس کردن رو خالکوبی اینام بگیریم ممکنه بگیم خلق رو در اینجا به معنای به اصطلاح صفت مستر بگیم یا با قول فارسی اما مستر مرخم ساخته خدا ساخت خدا یه کلنه خلق رو ممکنه ساختن خدا تطریب کنیم که یه مشکلی هست در بعض از جهاز لغت عربی خیلی واضح تر همون برزار همین لغت فارسی ما، مثلا فرق بین مستر و فارسی ما خیلی راحت تر میگه گفتن و گفتار فرقش خیلی راحته اما این فرق بینه اسم مستر و مستر در لغت عربی این وضوح میزر بگیه از مواردش اما در فارسی و خاطر گفتن و گفتار خیلی واضح این گفتن مستر از و گفتن رفتر اسم مستر این کلمه یه ببینی به فارسی در به ارتکازات و خود رو میتحصیب کنیم این کلمه یه فری می معادل محاده پارسی ساخته خدا بگیرین نیدی در لوقت هرمی بگن خرزایی معنی مستره یعنی ساخته گاییم به معنی مخلوقه اسم مخلوقه مخلوق همون ساخته هست ساخته شده ولی چه ساخته کامله ساخته شده از واقع عوامی خودون بیشتر در پارسی همونها علامات مخلوقی ساخته ببینید فریوگالیران خبقالله ساخت خدا رو مستر کوتاه شده، ساخت خدا رو معنا بکنیم یا ساخته خدا این ببین با از شرح فهم یعنی ممکن است ما بگیم مراد از خرد همون جهات ظاهریست و این جهات ظاهری نه به معنای اینکه مثلا ریشی مثلا رو صورتش هست موی رو صورتش هست برمیذاره این نیست. یا فرسین رو گلنش خالی نیست خالو رو که عبدالله دو مسئول بخته. این هم نیست شاید مراده از خلق اون روش تکلیم باشه اون راهش باشه اون راهی رو که خدا برای ساخت قرار داده یعنی اینها میان از راه که خدا قرار نداده تکلیم از اون راه ها و غیرون خلق الله خیلقت و از اون راه عبد می مثلا فرس این با مثال در تقریبی وقتی سالا دیده بودم که در فکرم که مثلا مردم هم به سالا به سالا حامل بشن مثلا این سینه مردم ها سلاحی که رحم زن بودم اونجا بزن سریشنگی داری اونجا روشت و ببینید این روش ساختن یعنی به سر این روشه این, روشه. این کیه که یک بر... روش مثلا همه چیزایی که الان به اسم شیششبیه سازی مثلا مراد یا که مثلا چخصی که مرد با یک عمل جنرالی خودش رو تغییر بده تغییر جنسیت یا در میو خدا رحمتشون شاید در حدود 38 سالت فهمان از اینکه شنو سالقانی که مرد مایی گوجونیکو کنال 2000 از نشار بوده زمان اونها اشی گوجونیشون صحبت تغییر جنسیت رو دیگه از این اسم اون برن تغییر جنسیت از ابراهیم رسای جای کرد خدای گوجونیکو از طرف حرف نیست بذنش چی بود یا من گفتم ببین خود ایشون کی قلی غیرون خلق الله دارین که بعد ایشون گفتین که این تغییر نگاه تو منزله ایشون نگاه بکنیم ایشون به همونجا برعکس نه این تغییر جنسیت تغییر خلق الله حساب میشه این بذوز تغییر خلق الله که مثلا مرد با یه عمل جراحی خودشو زن بکنه یا زن مرد بکنه حتی اون چیزی چند دفعه جابجایی شده زن میشه مرد میشه حالا کیف ماخان اون اون بحث دیگه‌ست که مثلا زن واقعا اما آقا بعضی از مذاهر خیلی کم مردو داره بحث دیگریشون یا بعضی از خونساها مثلا او بحث دیگری. ایست حالا بحثتر این قسمت تا یواشاش روشن بشه چون مخونی آیا بررسی بشه آیا مرد یعنی آیا بین این دو تفسیر به لحاظ فقهی هم اثر داره به نظر ما چرا اثر میکنه به مجرد این که میگی بید خلو پی داره که جمعیه ما این کافی نیست چون اگر گفتیم مراد مثلا وشم و مثلا خالکوبی یا وصل شهره خود این عنوان ها حرام میشن یعنی قدیم با حال خالوی خوب شد خالوی مخلوم شد من دارم الان دارم ترم میکنم دیگر الان من رو زدیم ترم میکنم نتیجه که نگرسیم الان دارم ترم بحث رو میکنیم خوب دقیق بکنیم هست بنابراین این تا اینجا الان ما روشن بشه مثلا اون چیه که ما الان در اینجا داریم اینه که آیا یا که مثلا لا تبدیل خلق الله یعنی دین الله این البته از خبر اضافه بر این کلمات مرحوم که مضمون مضمونهای شعر و عدی آیه علامه توازنی میذار در میزان همین رو قبول کرده و این کتاب فاضل معاصر ما عبارات میزان هم آمده و تفسیر المیزان لون رن او بزرگ شریخ خلق و ینتبه او البته ایشان و همون طبیعت ینتبه گرفته شده دیگه از کارهایی شدی معروف در علمیزان خدی ریاض از تفاسیر رو میگن جریو و تقدیر جری و صد جری و ترویج جری و <تصفح> <تصفح> <تصفح> این دیگر از اصطلاحات شایع ایشانه ایشون بیانتبه رو بر مبنای اختصاء اثر صحیح اختصاء و انواع مسلمه گوشه میگه را بباره آ تغییر خلق الله مثلا ل لاس رو میشه تغییر خلق الله حساب کرد چرا؟ چون به من آیاتی خل قلب با من ان از هم ازوا چند ت و خداوند برای بریایی شهوانی هم همراه معینی قرار به غیر از اون راه میشه این حرف خوبی احتصا بکن لاس رو پیششون اوعبن این حرف خوبیه این کنگ از اون خلق علاقی خیلی از اون راهی که خدا قرار داده بله و در اون آیه مبارکه من من افتقابره اداره که که اولایه که همه مال کسی که هید از این راه هایی که این مواردی که در آیه آمده بخواد انجام بده این تحدیه کرده یعنی از اون راه و فطرت علاقی خارج شده و سخت در زنها مثل لبال در مرده و ولیسه من البعید ان یکون ان مراب خلق الله از خروج ان حکم فطره این طبق همین تفسیر که مرحوم شیخ توسی هم و هر سر اگر درست باشه تنها تفسیری که از امامین و همامین امام باقر و امام صادق به ما رسیده همینه تنها تفسیری که به ما همینه که مرا در تغییر دین خلق الله تغییر دین الله و مسترش هم ارز کردیم منحصر از شئلن در تفسیر تبیان با تعبیر روی دارگن عوی جرزل و عوی الله الان در کتاب های دیگر حدیثی ما هیچ اثری از این حدیث نداریم ما مثلا کلن ما هیچ عنوانی از این حدیث که مراد تفسیر تعبیر خب الله دین الله در اختیار ما نیست و ترک دین الحنیف قالت آلا فرمجان ورچه دین حنیف ها فرفتن لاحلتی فتران الناس حالا تبدیل خلق الله و ایشان این خود محروم تبوتبایی طب قدسان لاحصیده مبناشون برای اینه که در آیات احکام وارد نشن بحثی فقیهی نداره. و که باقت نظر هر از این جهت اصولا زوق فقیه هم ندارن میگه اینجا این نکته فنی لطیفیه که اگر خلق الله مراد دین باشه یا مراد امر الله باشه که در کتاب تفسیر علی بن نبرانی آمده این اولا خب یاد به دلیل خب ما در خود قرآن خیرش هم داریم حالا خلق الله ف... و در قرآن اصولا خلق الله چند سه مورد سه مورد دو مورد سه مورد میاد خلق که خلقی فتشا و تجوب الخبر علی یکم خلقی داریم این استعمال خلق الله در قرآن اصولاً کلمه ای که ماده خلق و خلقه و خالق و مخلوق جزء در قرآن زیاد استعمال شده اما با این ترکیب خلقی و خلق الله خیلی استعمال کمیه در یکیش می معنی دین الله گرفته شده که الان با توضیح داده بشه در یکی دیگه خلق الله فرعون ماده خلقت الذين من دونه که ظاهرا ظاهرش باشه اون خط بر به هر خلق علی اینا ظاهرا ظاهریه این یکی و اراده حالا اینجا مشکل بیشتر کجا میشه مشکل بیشتر اینجا میشه این خلقالله خلق یعنی امرالله ایل از این که با اون آیه حالا خلقالله باز نمی‌سازه. یک آیه دیگر داریم امرال خلق, خلق از ظاهر اون آیه مبارکه معلوم میشه که رسوقن صدق خدا دو مرحله یعنی قیب و شهادت به اصلا یا به یه معنی و ظاهری دو مرحله رو برای خدا قرار داده شده یکی خلق زاهر زاهر یکی آلم عمر، که ظاهر باشه که عالم امر، عالم عالم امور باشه، اول سوری از طرف یوسف یک عالم امر هست یک عالم خلق هست و از این روایت مبارکه، و آیه معلوم میشه فنیو غیون خلق الله یعنی شیطان هر مقدار که به حاحت تصرفات بکنه تصرفات او در عالم خلق در عالم عمر نمیتونه تصورت بکنم اگر این معنا رو بگیریم پس این امرالله هم که در این که من توضیح بیدم کلمه امرالله روشن نیست مثلا مالی کیه تو تصورت بکنم من چون نمیدونم اوز میرستم این یه مقضای امکان راجع به تصورت با صحبت بشه من یه توضیحاتی ها اونجا عرض بکنم خب این تا اینجا راجع به این آیه مبارکه البته این در مساضر اهل سنت ها امروز کنیم نسیم تفسیر خوبی رو رویدیم به خود اولا من عرض خدمتتون که در کتاب اهل سنت و کتاب هاییم مثل این تفسیر خیلی متعارف شده الان یا در آهات رو نسبت میدن مثلا برای افلام و فلان یا معانی و تفاسیر رو به افراد نسبت میدن من کنان عرض کردم از وقتی که علوم اسلامی یک شکل و شمایل خاصی به خودش گرفت خیلی انصافنی که همت بزرگی سر اول چه سنی و چه شیعه انجام دادن برای مستریابی مطلب که مطالب مسادرش کجاست یعنی از همون اول که تفاثیر نهرش شد از کن در معارف دینی ما اول تفسیر و فقه بعد علوم دیگری که میخوام بگن مثلا از غمز و هم نه و لغت رو، دیگه نه از قرن اول شروع شد اما یه رسمن نحو و لغت اینها از قرن دوم شو کرد به شکل گرفتن مثلا در دوم مصرین و قول خودشون دو شهر نرو کوفه و بصره که قالب بر اهل کوفه شیعه بود و قالب بر اهل بصره همینشون اینا که اخفاشی هم در مورد بحثی‌ها هست ایشون شیعه هست. از کلام مجموعه اخفاشش تا معروف و البته معروفشون مجموعه با با مشهورشون 12 تا اغصاش اندازه ها اغصاش وسطی کشیه است اون صفه معنی میشن اون در ترجمه شون اغصاش شون واسه حساب سیتی مراجعت علایم کهماکات این رو خوب دقت بفرمایید از همون اول شروع شد مسائل رو بعد ها دقت بکنم و به لحاظ روایات احکام ارز از کردم از حدود سال های 105 و 106 بحث های سنتی یواش ها شکل گرفت یعنی این بحث هست نه چون مثلا او آفلان اونارو گرفت، اون اینطور واقعش قبول می‌کردن. خیلی دیگه بحثی نمی‌کنن که این چی بود، چی بود، از کجا بود. یابو یعنی شماش این بحث مورد بررسی قرار گرفت. اکثر شهرشوبت در حیا که اهل بحث اسلام برجا بشه امیر المؤمنین خیلی حدیث میگن. این اولین است که اولو منفعت شأن رجال به عراق این همین شوبت. این ریبنای رجال پیش اهل سنت و اول رجالی ما که ما الان ازش معلومات داریم عبدالله جلاله متوفای 1224ه. البته ما الان اون نقل قول نداریم که اصلا هم خبر نداریم اما اسم او به عنوان اول رجالی برده شده چون در شیعه سوال دیگری به رجال نسبت اون رجا نمیذاره اشتباه شد حالا ما وارد بحث میمونیم این بحثی که پیش اومد این منجر به این شد که در امت اسلام که به ما زیربناهاش و قرآن تدوین کرده و قرارداد و تربیت اسلامی آمدن تمام این گفتارها و صحبت‌ها را تنغیید کردن تنغیید کردن تن، به اصطلاح تسخیح کردن نقضی کردن بررسی کردن کتاب‌ها، نوشته ها ترقی خود از که کتاب معروف داره این کتاب کسی برایش نخونده این به نمه بجازه بشه مثلا هزار و به شعر رو سیروهی در کتابش به کار به شعر رو قادل نداره مثلا ایو سال آنها ساله رسول انریسا داره نوشتن نوشتنه احتمالاً جهادی باشه این تمام آن تمام حرفا چه در نص در سر، چه در که در تفسیر تمام این حرفا زیر بنایی کار شده کار خوبیه انصافا انصافا کار خوبیه این حدی از علم هم تعبیر رو دارن مما خصم الله و اصناد. این اسناد از اختصاصات امتی که برای احترم که هم احتمال قوی ما میدونیم نه بودی، همین داریم از الطاب و برکات امامت و ولایت علی و مهم بعد از معصومی که الهیات ده سن حدیث و اثنی دوع این اسباب ها یعنی که از کجا گرفتی این یک مسئله بسیار مهم نیست که الان ما واقعا یک سرت علمی بسیار بزرگی در این جهت الان جمع کردیم مثلا در کتب مسیحیات شما ندید این اسناد رو یهود در نداره الان مثلا در میان شیعه پس کنید زیدی ها اسناد های ضعیفی دارن اسناد به ما مثلا اسماعیلی ها از مذاهب که الان وجود داره چی ها کلا ندارن مثلا اسناد ندارن البته تو گیزاه بعضی از اسناد هست اما یک مشکل دیگه داره که من در بحث دارون اسلام مطرح اینه که بعد این مثلا فرض ابن حزم وقتی میخواد یه چیزی رو از ابن عباس نقل میکنه مثلا مسادرش نگاه میکنه میگه نه درست از ابن عباس نفت شد اکه این ثابت نیست زعیفه یا که این مطلب وقت سه هن ابن عباس اما کذا این چیزی چیزیز که الان دیگه بر اثر انتشار ای فراموش شد مثلا این جنابی این شیخ الان من هم این بود. شیخ رزواندو تالاله و قال زهاب و قال و تغییر تقییم که سه هن املا فرمسیم در تفسیف مقدار زیادی ابن کسی از علمان سنی که اول میشه باشه به هم هست. و هم برای بله شامی هم هست که دیگر خواسته میاد باشه. ایشون تا خودشان دل میشه آنها میتونن صلاح معلم الله کسی. ایشون یاد عرضیابی میکنه. تو امو کسی قدری هست چندین این در در کاری کشته نرسیده. میاد و بعد یکیش رو قبول میکنه و میگه این سال صادقه. خیلی عجیب یه مکتب سه حدیث قدری قبول میکنه. ایشون حدیث قدری رو به لازمی قبول میکنه که سه در خیلی از موارد تفسیر این کارو میکن، من به طرح عبیدم میونه که الان ما بیایم کل تفسیر و کل قراعات رو این کار بکنیم یعنی کل قراعاتی که منصوب میشه مثلا فرض در مجموندن که قرعه کلا این ببین مصدر قرعهش چی بوده قرعهش چی بوده قبلش تا به گریم مو میشه اصلیم داره سندش رو پیدا بکنیم مصدری داره مصدرش رو پیدا بکنیم من هدفم این بود که این دیگه تبیان شیخ سوسی زیر برای تقریبا مجوال بیان درم. مجبور برجمانم که می‌مردد از و وقرا مرد فوق العاده است بر هم تراز بیان میشه که اون یک معنای هنوز اون تراوته و لطافت و اون جهت علمی خودش رو اون استقامت علمی و وقاظه علمی خودش رو با گذشت مثلا از دیگه 700 سال بیشتر حفظ کرده. هرچند اینه که اگر این کار بشه خیلی خوبه. و برای این کار ما که خود اون مستر نداریم که از ما راحت میشه مثل حرف صدی و زهاب و مرات تو روایت ما نیست که شازه راهت یکی از مساجر مهم که در این جهر هست این کتاب تفسیر تبریخ به جامعال بیان هم چاپ محقق شده من ندارم این چاپ قدیمی که در خواهش این کتاب دیگه چاپ شده این کتاب یکی از مزایای بسیار بسیار مهم این کتاب همین نسبت مستدر دادن و احادیث رو با سند درنی کردن که این خیلی راحت دیگه میتونه انسان کجا راحت ایشون به اصطلاح م... م... م... ارواح رو ناز میکنه همین در همین جا هم در همین آیه مبارکی که الان محل شاهد ماست ایشون با یک دقت و ظرافت خاصی همین اقوالی که شیعه خورده همین اقوال رو ایشون در اینجا آوردن و از خوبی‌های های ایشان از کردن به که به دقیقت مصادر بله. این روایات رو میگه این اگر این کار بشه و مسادر روایاتی که در تفسیر آیاته و مسادر قراءات مثلا یک مجموعی نرشدش ممکنه دیست جلده شد قرآن در قراءات هر قراءاتی که شده تماما دان دانه دانه کلمه به کلمه از قدیه ترین محضت تا اینجا پیدا بشه خود ایشان در این صفحه 180 ببن در جد 5 این تفسیر بله. متعرض شدن بعد ایشون میگه من اخترافه اندو تأویل در معنی قولی فلیو غیرون خلق الله فقال بعض همون معنی داره در آمورنه من به ها به اخصایه بعد اخواز رو ارده بازه رسنن این مهم اینه این اگر حال حوصله بشه تمام این روایات و اقوال چون مثلا از ابن عباس دو جون شده مثلا اونجا نقر کرده بود از اکرمه دو جور یکی خصا و اخته کردن و یکی هم بین الله حالا من شون دیوزم رو از کردن اینجا این حدیثی داره که به این تعبیره مجاهد قاصد قاسدن عبیر بزد من گفت مجاهد من گفت سل انها اکرمه از این آیه فقاله فسألتو از اکرام خرسان فقال الاختص یعنی اکرام گفت مراد اخته کرد قال مجاهد ما له لا انه الله خدا لعنت شریکیو بی این معنا سب الله لقد علم انه غیر الاختص خودش میدونه که اختص نیست چون من قابل ثرواتم باز سوال کردم فس از تو فقال اکرام علم تسمع الى قول الله تبارک هست. من الان به شما اخردم این بحثا شد اشباح بن از ظاهر. از زمان صحابه و تابعین شد اکرام جزء تابعین یه رو ده هست کردم اکرمنت که در جنگ سیستان برده شدن, شدن. چههل هزاره اصلی گرفتن که پنشیش نفرش میگذرون علمای بزرگ شد یکیش هم در جنگ در زمان سیستان در اون روان سیستان در بعد فهردست و فقال ازم فسم ایلا الله تبارک و تالا ففرسن الله علیه ها قال الله خود اکرمنت فهردست و بیهی مجال وقال قال ماله و احضاها الله من نفهم همون معنا رو کرده گفته لعنه الله این معنا هم گفته ماله و احضاها الله خدا سرکول شده خدا سرنگون شده آلا من چی دام چیشون بعد بعدیشون یک توضیحاتی هم خود تبری انصافن تبری مرد مولای اصاب جز آرائه خیخی هم داره جز فقه ها اصاب میشه مولای یک مطلب رکیفی هم در اینجا داره داره اگر بعد در های بهش احتیاج بزرک کردیم دوما که مطلب خود شخصی ایشان خیلی از جواز نکنیم ما راجع به این آیه سکرا به همین مقدار بناس اتفاق کنیم چون بعد میگردیم بعد برداشت کلی از قرآن داریم اون دو تا تاریه دیگرم میخونیم و صحبت هایی در شدیم بعد, بعد میگیم به برداشت کلی قرآن داریم